آسیاب عجیب نام داره در روزگارهان قدیم دو برادر بودند که یکی ثروت زیادی داشت و دیگری بیچیز بود برادر ثروتمند نسبت به تمام همسایه ها مهربان بود اما نسبت به برادر بیچیز خود علاقه نشون نمیداد. چون می ترسید ما دو برادرش چیزی از او مطالبه کنه و ازش درخواست موضوعی رو داشته باشه برادر بیچاره این مسئله رو درک کرده بود و هرگز چیزی ازش درخواست نمیکرد. در یکی از سالها قبل از ایام عید وقتی زن برادر بیچاره دید که در خونه چیزی برای خوردن ندارن به شوهرش گفت چطور باید عید امسال رو بگذرونیم اقلا پیش برادرت برو و ازش بخواه تا به ما کمی گوشت بده شنیدم که دیروز گاوی رو سر بریده مرد بیچاره حاضر نبود که این کارو بکنه اما چون در زندگی کسی رو نداشت تا پیشش بره ناچار نزد برادر ثروتمندش رفت و گفت برادر جان. کمی به ما گوشت بده. این روزا عیده و در خونه چیزی نداریم بخوریم. برادر سروتمند مقداری گوشت بهش داد و گفت بیا بگیر و میان جنگل پیش شیطان برو. برادر بیچیز اونو گرفت و حرکت کرد و بین راه با خودش گفت چون برادرم این گوشت رو به شیطان بخشیده پس باید اونو برای شیطان ببرم و بهش بدم. به طرف جنگل حرکت کرد. مقداری راه پیمود. و بعد بین راه با ادهی از هیزوم برخورد کرد و اونا پرسیدند با این وضع خیال داری کجا بری مرد بی چیز جواب داد پیش شیطون میرم تا کمی گوشت بهش بدم شما میدونید خونش کجاست هیزم شکنا گفتند همینطور راست برو تا به خونه شیطان برسی اما هرچه به تو میگیم گوش کن در برابر این گوشت اگه شیطان خواست چیزی بهت ببخشه قبول نکن فقط بگو یه آسیاب دستی میخوام مرد فقیر خیلی راه رفت تا به کلبه شیطان نزدیک شد. شیطان داخل کلبه بود. وقتی اونو دید گفت: مردم به من وعده ها میدن ولی کمتر به وعده خودشون عمل میکنن. حالا بگو ببینم برای من چی آوردی؟ کمی گوشت گاف. شیطان خوشحال شد و گفت: در حدود سی ساله که به گوشت لب نزدم. بسیار خوب. گوشت رو گرفت و برافاصله فاصله خورد و گفت: به جای این گوشت باید بهت پاداش خوبی بدم. حالا از این گوشت چی میخوای بهت بدم؟ میخوای بهت پول بدم؟ مرد بیچاره گفت من به پول احتیاجی ندارم شیطان تلاهای خودش رو حاضر کرد و خواست دو دومش طلا بهش بده ولی مرد به جواب داد من به طلا هم احتیاج ندارم خب پس چی میخوای؟ من آسیاب دستی تو رو میخوایم شیطان جواب داد نه نمیتونم اونو بهت بدم تو هرقدر پول میخوای بهت میدم ولی مرد بیچاره راضی نشد و آسیاب دستی رو میخواست شیطان گفت، من گاو رو خوردم، بنابراین ناچارم هرچه بخوای بهت بدم. بیا، این آسیاب دستی من، ولی بگو ببینم، میتونی ازش استفاده کنی؟ مرد فقیر جواب داد، نه، راه استفادهشون نمیدونم، بگو تا یاد بگیرم. شیطان گفت، این یه آسیاب معمولی و ساده نیست، بلکه هر چیزی ازش بخوای بلافاصله انجام میده. فقط کافیه بگی، آسیاب من آرد کن. بعد به کار میفته و وقتی هم بگی دیگه کافیه آسیاب از حرکت باز میمونه و کار نمیکنه. مرد بیچیز از شیطان تشکر کرد و به خونش برگشت مدتی در جنگل راه رفت شب شد بارون تندی اومد و باد سختی وزید مرد بیچاره هنگام صبح به خونش رسید زنش پرسید این همه مدت کجا بودی؟ من خیلی ناراحت شدم فکر میکردم اتفاقی برات افتاده مرد فقیر جواب داد. من پیش شیطان بودم بعد آسیاب رو از جیبش درآورد و به زنش گفت این یه آسیابه که همه کار میکنه بعد گفت آسیاب من آرد کن و برای ما چیزهایی رو که در ایام عید لازمه فراهم کن آسیاب خود به خود به گردش در اومد و ناگاه سراسر میز پر از آرد شیرینی قند گوشت و ماهی شد زن هم اونا رو برداشت و ریخت توی زرف بعد مرد فقیر انگشتش رو با آسیاب زده گفت دیگه کافیه. به این ترتیب در خونه اونا اون سال مراسم عید به طرز بسیار باشکوهی برگزار شد و وضع زندگیشون خیلی بهتر شد. زن و بچه هاش لباس های تازه بتن کردند، کفش های قشنگ پا کردند و نقص و کسری هم در زندگی نداشتند. یه روز مرد بیچیز با آسیاب دستور داد که کمی جوی سیاه برای اسبش فراهم کنه. آسیاب به گردش افتاد و مقداری جوی سیاه تهیه کرد. وقتی جوی سیاه تهیه شد، اسب با اشتیاق زیاد به خوردنش پرداخت. در همون هنگام، برادر ثروتمند اسب پاش رو به دست مستخدمش سپرد تا اونا رو برای خوردن آب به صخر ببره. مستخدم اسب‌ها رو هدایت کرد. اما موقعی که خواست از کنار منزل برادر فقیر عبور کنه اسب‌ها توقف کردند و به همراه اسب برادر فقیر به خوردن جو سیاه مشغول شدند ناگهان برادر ثروتمند که از دور ناظر این جریان بود روی پله‌ها اومد و فریاد زد آهای مستخدم اسبام رو زود برگردون ممکن چیزای کثیفی بخورن و مریض بشن مستخدم اسب‌ها رو برگردوند و به اربابش گفت نه ارباب در اونجا چیز کثیفی نبود بلکه از پای جوی سیاه بسیار اعلایی میخوردند. برادرت همین و جوی سیاه بسیار اعلا اونم به مقدار کافی در اختیار داره. کنجکاوی برادر ثروتمند ناگهان تحریک شد و گفت برم ببینم چطور شده که برادرم اینا رو به دست آورده. پیش برادر بیچیزش اومد و گفت برادر چطور شده که ثروتمند شدی و این چیزا رو از کجا به دست آوردی؟ برادر فقیر همه جریان رو براش تعریف کرد و گفت این شیطان بود که به من کمک کرد. خب آخه چطور شد؟ اگه خاطرت باشه قبل از روز عید به من کمی گوشت گاو دادی و گفتی به شیطان بدم. منم به طرف جنگل رفتم و گوشت رو بهش دادم. شیطان به جاش این یه آسیاب عجیب رو به من داد. از این آسیاب هرچی بخوام فورا حاضر میشه. خب نشون بده ببینم. بسیار خوب. مرد فقیر از آسیاب خواست تا انواع غذاها رو براش فراهم کنه. آسیاب چرخید و کمی بعد روی میز پر از کباب‌های سرخ شده و شیرینی‌های گوناگون پر شد. چشم‌های مرد ثروتمند از تعجب و حسادت باز و گفت: برادر این آسیاب رو به من بفروش. نه من نمیتونم اونو بفروشم، خودم بهش احتیاج دارم. برادر ثروتمند پافشاری کرد و گفت: هرقدر پول لازم داشته باشی بهت میدم اما این آسیاب رو به من بفروش برادر جان همونطور که بهت گفتم نمیتونم اینو بفروشم برادر ثروتمند وقتی دید که از این راه نمیتونه به نتیجه برسه پیشنهاد دیگه ای کرد و گفت چقدر تو آدم نمک نشناسی هستی بگو ببینم چه کسی این گوشت رو بهت داد خب تو دادی بنابراین چرا نمیخوای این آسیاب رو به من بفروشی بسیار خب حالا که نمیخوای بفروشی پس چند روزی پیش من به امانت بگذار مرد فقیر کمی فکر کرد و گفت خیلی خوب، برای چند روز پیش تو باشه مرد ثروتمند خوشحال شد و آسیاب رو گرفت و به منزل رفت اما از برادرش نپرسید که چطور باید آسیاب را از حرکت باز بداره در این هنگام با خودش فکر کرد الان موقعی که افراد میخوان ماهی رو نمک بزنن و نمک هم خیلی گرونه پس بهتره به دریا برم و نمک تهیه کنم و اون رو با قیمت گرونی در اختیار خریداران قرار بدم به طرف دریا رفت و به آسیاب گفت به و نمک های زیادی برای من تهیه کن. آسیاب تون چرخید و نمک های خالص و سفیدی پخش کرد. مرد ثروتمند وقتی نمک ها رو دید خیلی خوشحال شد و به خودش می گفت که از این کار استفاده سرشاری خواهد برد. وقتی نمک فراوانی تهیه شد در صدت بر اومد که آسیاب را از حرکت باز بداره ولی فریاد زد آرد کن آرد کن. جلوی قایق بر اثر بار زیاد در میان آب فرو رفت و مرد ثروتمند از اونجا که دست پاچه شده بود مرتب فریاد میزد آرد کن، آرد کن. سر و سر قایق رو آب فرا گرفته بود و قایق در حال غرق شدن بود. مرد ثروتمند کمی به خودش اومد و فریاد زد بسه آرد نکن، آرد نکن. اما آسیاب مرتب به کار خودش ادامه میداد. مرد فریاد زد توقف کن. اما آسیاب باز به آرد کردن ادامه میداد مرد ثروتمند در صدد بر اومد که آسیاب رو بگیره و بندازه توی دریا ولی این کار از دستش بر نمیومد در این هنگام یه طرف قایق زیر آب بود مرد ثروتمند فریاد زد کمک کمک اما کی میتونست مرد ثروتمند رو نجات بده و بهش کمک کنه قایق و مرد تماع به قعر دریا فرو رفتند. مرد ثروتمند غرق شد و دریا برای همیشه او را در کام خودش فرو برد. میگن در ته دریا باز هم اون آسیاب داره به کار خودش ادامه میده و مرتبا به آرد کردن نمک مشغوله. شاید به خاطر همینی که آب دریا شوره.